بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دو هفته پیش من درباره مسائل الهی یک سخنرانی کردم در حضور برخی از دوستان بعد یکی از پوزلای مملکت ما جناب های دکتر محمد حیدری ایشان یک نقدی بر اون عرائز من داشتن و این رو برای من فرستادن از لطفشون بسیار تشکر میکنم ولی با کمال عذرخواهی پاسخی هم خدمتشون میخوام تقدیم بکنم نقد ایشان مفصله در پنج سپه دوستان عزیز زحمت کشتن پیاده کردن در ابتدا پرمودن که راستش در این سخنرانی استاد چبا چبایی مطالب زیادی را همزمان مطرح کرده که پاسخ روشن دادن به همه آنها سخته انشاءالله سعی میکنم در چند متن توضیحاتی بدهم ما منتظر توضیحات هستیم مرقوم پرمودن اولا استاد آیه ظاهر الظاهر والباطن را صحیح ترجمه نکردند زیرا آیه نفرموده؟ فرموده حبت ظاهر و الباطن و هازالالم با جسارت ارز میکنم که این عبارت صحیح هم نیست باید مرغم می فرمودید حبت ظاهر و الباطن و آدم. اینجا حتما لام ارز کنم بر سر حازال لازم حالا کاری به این نکته گیری نداریم خدا ظاهر و باطن این عالم است بلکه گفته خدا ظاهر و باطن است ایشان می که تبایی طبع چرا این تفصیل کرده ظاهر باتن این عالم هست بعد بگه ظاهر به طور مطلق خدمت شما بر گرامی و خدمت دیگر دوستان عزیز عرض میکنم که اول و آخر و ظاهر و باتن از مفاهیم اضافی هستن یعنی اول همیشه اول یه چیزیست آخر آخر یه چیزی است اون که تموم شده این آخر میاد ظاهر و باطن هم همینطور چون ظاهر رویشون به معنی قالب و فوق اشیاء گرفتن فوق اشیاء فوق چیزی است باطن هم باطن اشیاء این از امور اضافی است اینها این سپات پالت کما اینکه خود ایشان حدیث رو نقل کردند که من و حلیص رو مکرر خودم در سخندانی هام عرض کرده بودم که از خدا فرمودند اللهم انت الاول و فلا شيء و فلا شيء بعدك وانت الواحد و فلا شيء فوقك وانت الباطن و فلا شيء دونك در دعاشون این فرموده بودن ایشون هم این حدیث را آوردن و یه قسمت کمی انداختن انت الاول و فلا شيء قبلك مشیئ امم من به و انت الاخر و فلا و بعدك شيء شيء انداختن در که حدیث همطور گفتم اللهم انتل اول پلیسه قبله که شای و آخر و پلیسه بعده که شای تاخر خود اینشون مخ... اینطوری ترجمه کردن که اول یعنی قبل از خدا چیزی نبوده ببینید خدای تعالی رو با چیز تنجیدن که افتران اول بوده و عالم را بعد آفردید الاخر یعنی بعد از خدا هم چیزی نخواهد بود ملاحظی فرمایید روی این چیزی من تکیه دارم یعنی ایشان آخر رو با چیز یعنی با اشیاء دیگه سنجیدن در بخش دوم که به ظرف مکانی اشاره دار فرمودت از ظاهر یعنی چیزی باداتر از خدا نیست مدرده بفرمین خدا رو سنجیدن باشه ایم. و باطن یعنی چیزی نزدیکتر از اونیست پس این طوره. بنابراین من اشتباه نکردم و متاسفانه در فهم اون حدیث نببی و فهم آیه شریفه یه قدری کتاها بیشتر دقت بفرمن موضوع دیگری که میخواستم ارز کنم و اون این است که ایشان مرغون فرمودن که تبا حالا من استادشو هست میکنم اشاره کردند که اینکه که خلابند موجودی جدا و مستقل از مخلوقات خداست یک فکر یهودی است توجه پرمید موجودی جدا و مستقل رو این تکیه جدا رو این کلمه جدا تکیه دارم بعد پاسخ دادن اولا قرار نیست همه چیز اهل کتاب قدرت باشد مگر ما در آیات مختلف قرآن نمیخوانیم که با آنچه به با داده شده ایمان داریم بله میخوانیم اما اون که در تورات آمده راجب خدای تعالی در معرض تحریف قرار گرفته شما اگر به تورات مراجعه می فرمایید می‌بینید که تورات تصریح داره که خداوند متعال به موسی فرمود که وقتی او تقاضا کرد که خودتو به من نشون بده خدا فرمود که من از پشت سر می‌تونی ببینی ولی از روبرو نمی‌تونی ببینی در حالی که قرآن کریم می‌فرماد که از کم بلند ترانی هرگز من رو نخواهید دید بعد نکته دیگه این است که در تورات مثلا آمده خداوند آسمان و زمین رو در شش روز آفرید و روز هفتم استراحت کرد به همین جد یهودی ها در روز هفتم دیگه روز بعد شنبه سبس کار نمی کنند در حالی که در قرآن کریم می فرمد ولقد خلق نستم با و بای نه ما و پی ستت از ایام و ما مثلا نام دقوب ما جهان که خلق کردیم خستگی و درماندگی به ما نرسید خدا من از از سوره قاف آیه 38 اون که در ارز کم که استراحت خدا آمده صفر خروج باب 31 باز در مرتبه در تورات ما میخوانیم که خداوند با یعقوب که همون اسرائیل علیه السلام باشه کشتی گرفت و اون محلی رو کشتیه استر نامید و به صورت انسانی درمد و با یعقوب کشتی گرفت و پای یعقوب رو لمس کرد به طوری که پای او از کنم که صدمه دید و لنگ لنگان میرفت و می گفت امروز با خدا کشتی گرفتم آیا چنین سخنی معنی داره اصلا با قرآن موافقه از طرف دیگه شما میبینید که در تورات تصریح شده که خداوند به صورت بشری نازل شد و در یک ابری جلوی سپاه بنی اسرائیل حرکت میکرد که به طرف جنگ میرفتن که اونا رو تعیید بکنه آیا خدا به صورت بشر در میاد و جلوی سپاه حرکت میکنه اینا موافق با قرآنه پس تورات در الهیات که نمونه گفتم کاملا دستخوش تحریفه و از این جهت فرمای شما که میگید که به تورات بعد ایمان داشت بله ایمان داریم ولی وقتی مقایسه میکنیم با قرآن کریم و میبینیم که تورات موافق با قرآن نیست میفهمیم که دستخوش تحریف شده این برادر بزرگبار عزیز ما که خیلی به احادیث توجه دارند، لابد این حدیث مشهور رو از ابن عباس هم در صحیه بخاری دیدن که فرموده اون تسلون که کتاب انشیئن چگونه از اهل کتاب چیزی رو استعال می‌کنید و کتاب کمولدی انزد علا رسول الله صلی الله علیه وسلم اهدست با اینکه کتابی که بر پیغمبر نازل شده کتاب شما این کتاب نوینه پیام نوتره تقرعونه و محضا, محضا یعنی خالصا خالصانه و رو میخوانید خالص و رو میخوانید چیزی مخلوطش نشده لم یا شب چیزی مشعوب و آمیخده با او نشده به تورات وقد وقت حدسکم در حالی که این کتاب به شماست حدیث گفته خبر داده انه اهل کتاب بدلوا کتاب الله و غیرو که اهل کتاب تبدیل کردند کتاب خدا رو و تغییر زدن چون که آیات زیادی هم در قرآن هست و حرفون الکذبه مباذه و وجل للذین یکتبون الکتاب بعدی همسون میگولند من عند الله بعضی قابل آیات هم هست بخاری این عبارت رو در کتاب الاعتصام به کتاب و نه از کم صفحه 136 آورده پس این مطلب که ایشون میفرمایند که ما بعد به کتابشون میمون باشیم باید توجه داشت که امروز اونچه که در دست ماست کتاب تحریف شده است و ما نمیتونیم به همه این ایمان بیاریم در تورات گفته اون گوساله طلائی رو حضرت هارون علی السلام ساخت پیغمبر خدا منزه از این که گوساله به ساز مردم به عبادت اون پرستش اون دعوت کنه قرآن میگه هیچ پیامبری نفرسیم مگر اینکه دعوت به توحید میکرد لقد بسنا فی کل امته رسولا ان اعبدوا الله و تنبوا تاغوت پیغمبر نمیگفت تاغوتو بپرستید و هر حال ارز کنم که بنابراین ما در الهیات نه با از یهود رو بریم حالا ببینیم ایشون چه میگویند. ایشان میپرمند که ما دلیل عقلی هم میاریم بسیار خوب شما در اباخر بحثتون به من اعتراض کردیش که شما به قرآن و دلال عقلی متوسط هستی حالا اینجور دلیل عقلی رو شما حجت دانستی در رد من ارز کنم که دلیل عقدیشونی که قبل از اینکه خداوند جهان را خلق کند آیا خودش بود یا نبود؟ البته بود حالا سوال می شود که وقتی دنیا را آفرید از سه حالت نمیتواند بیشتر باشد یا دنیا را خارج از ذات خود آفرید یا داخل ذات خود یا دنیا را خارج از خدا آفرید و بعد خود در آن وارد شد گزینه سه که خدا در جهان وارد شد عقیده حلولیه است گزینه دوم هم کفر است که خدا در خودش چیزی را آفرید ذات خدا چیزی از آفریدگان در اون ذات راه نداره بنابراین ناتور باید بگیم گزینه اول درسته یعنی خدا جهان را خارج از ذات خود آفرید خیلی خوب این دلیل عقلی ایشانه. در اینجا متأسفانه ایشون منشأ نزاع محل نزاع رو نفهمیدم متوجه نشدن با کمال معذرت محل نزاع این است که خدای تعالی جهان را آفرید ولی ارتبارت و اتصال با جهان داره خدای تعالی میفرماهد که ان الله یمسک السماوات و الارض ان تهزولا خدا جهان را از زبال نظام را از زوال حفظ میکنه یمسک فعل مزاره استمرار داره باز در آیۃ الکرسی میگه زمین لا یعودهو حفظهما و هو العلی حفظ آسمان و زمین بر من سنگین نیست خسته نمیکنه علی علیی عظیم پروردگار ماست بنابراین تالا جهان رو رها نکرده بله جهان غیر از خداست ما وحدت وجودی نیستیم اما دائما فیض پروردگار بر عالم میتابه و اتصال داره فکر یهودی مثل فکر بنای است که بنایی رو ساخته ساخته و نون میره کنار این بنای ویرانم چه اون سرجاش هست توجه میفرمایید که خود این بزرگوار جناب آقای دکتر محمد است، فرمودن که توابع ای اشاره کرده که خداوند موجودی جدا و مستقل از مخلوقات خدا یک فکر یهودی است سالمان ینی بعد میطوریم معتقد باشه که خدا جداست از عالم یا ارتباط داره داآمن باعالم دامن پیزش میاد یک لحظه پیز او نیاد نظام به هم خورده انله های هم س و سما و اواصول ارزن تزوللا و انظلت ها ان هم سک ها آم اهل از این مرحله وقتی که میگذاریم میبینیم که ایشان اراده دیگری به بنده ایحقیر کردن و اون این است که در آیه ما و به کل شیء محیط چیزی که استاد بگویان صحیح نیست خداوند بر همه چیز با علم و قدرت خود محیط است و اگر آنطور باشد در عمل می شود همان عقیده حلولیه بسیار خوب شما خودتون الله حلولی شدید استکبار کنید چرا به جهتی که شما میگین قدرت خدا به همه چیز تعلق داره علم خدا نه ذاتش چون اگه بگیم ذاتش حلولی میشیم خب آیا قدرت خدا جزء خدا نیست؟ قدرت خدا مخلوق خداست یه چیزی جداست از خدا مثلا یا این ذات خداست قدرت خدا مثل قدرت مند و جنابه های دکتر نیست که ما اول ضعیف بودیم به تدریج تقریبت شدیم غذا خوردیم روش کردیم قدرت پیدا کردیم یا برزش کردیم تحصیل قدرت کردیم قدرت خدا عمر است وقتی که شما میگین قدرت خدا در آلم آمده همون عقیده حلولی میشه. پس شما بدون اینکه توجه داشته باشید دارید حلولیه رو نف میکنید رد میکنید و خودتون گرفتار این عقیده شدید. علت قضیم این است که معنی احاطه رو متوجه نشدید با کمال مذرم. گفتید آلم اصلش برگشت میکنه به اتمها و احاطه یعنی خدا دور اطوم هاست. مثل دایره که میگین که بر محتبای دایره محیطه یه همچی تصوری دارید تصوری خطی دارید که دور چیزیست نه احاته نیست احاته هفته حالا به موجود داد احاته خالق به مخلوق علیت به معلوله از کنم که حاکم به محکومون علیه احاته قدرت به مقدوره احاته است تسلط همه جانبه بر سراختر سر زرات آدمی فیض میده دیشب یک کسی از من پرسید که اینکه که خدای تعالی میفرمد که من از رگ گردن به شما نزدیک ترم یعنی چه؟ خب رگ گردن که خیلی با ما نزدیکه چیزی که نمیتونه از اون نزدیک بشه گفتم رگ گردن رو کی آفریده حق تعالی یه لحظه اگه بخواد که از بین بره از بین میره پس او از رگ گردن در حیات تو مؤثر تره. به تو نزدیک تره. تو در قدرت و احاطه او هستی لا یمکنن فرار من حکومت الله از حکومت حق تعالی گریز ممکن نیست فرار ممکن نیست پس معنی احاطه به حاطه نه یه خطی شما پرس کنید دور اتم ها و بگید اینم که میشه حلولی بعد فرمودن که نباید بگیم خدا باطن این عالمه او خودش فرموده و خود شما ترجمه کردید و اول و آخر و ظاهر و بالباطن. باطن چیز اول چیز آخر چیز در حدیث نبویم همین بود اللهم انتال اول فلا شیع قبلک و انتال آخر پلا شیع و انتال باطن شیع فوقت و انتال ظاهر شیع دونک خوب. بعد فرمودن که این هر قلطه بجاید که مانند این است که کل عالم را موجودی مانند انسان که مرکب از جسم و روح هست فرض کرده باشویم و بعدا بگوییم باطن آن مانند روح است ذات خدا باطن عالم مانند روح نسبت به بدن خب خیلی تفاید داره بجاید که روح ما که بدن ما را خلق نکرده بعد که بدن ما کامل شد خدای تالا روح در مادمید فایزال سبویت هو و نفخت به من روحی وقتی به کمال رسید ثم انشأنا خلقا اخر پس روح ما بدن ما رو خلق نکرده ولی خالق عالم مخلوقاتو خلق کردند. پس نسبت خالق به مخلوقات مثل روح و جس نسبت به هم نیست که من همش الکی زدم شما این مثال آوردید گردن من بذارید تا بگید من مثلا حلولی ببخشید مثالتون از همین که ناجوره در اینجا یه نکته دیگه اشاره کردید و اون نکته این است که تبا تبایی رأی اهل سنت را منصبانه و صحیح برای مخاطب خود مقنه می بلکه سعی می آن را چیزی سطحی جلوه بدهد مثلا می پادشاهی به کسی گفته زبان این را ببر و طرف ندانسته منظورش دادن هدیه است اشتباه زیادی شده در اینجا اولا این مثال رو بنده نزدم ثانیان پادشاه نبوده از کنم که این مثال از کتاب سید جناب ابن جوزی نقل شده همچون که شما میدونید ما ابن قیم جوزیه داریم که شاگرد شخل اسلام تیمیه و ابن قیم جوزیه داریم و ابن جوزی بغدادی همبلی داریم که کتاب زادل مسیر بی علم تفسیر نوشته کتاب الوپا و احوال المصطفى نوشته و کتب زیادی داره ایشون یک کتابی داره به اسم سیدالخاطر. در اون کتاب ایشون میگه که یه زنی به اسم خنسا شاعری برای حجاج ابن یوسف یک شعری گفت و حجاج به نوکرش حالا به زیر دستش به کارمندش گفت اقتالسانها زبانش رو قد کن منظورش این بود که یه سلهی بشه بده که صحبتش تموم بشه بره پکارش اون رفت و یک چاقوی کاری ها برد و خواست زبان اینو ببره این شاعر بود زرافه سخن رو میفهمید، با اینکه زنم بود نسبت به اون مرز ها قدیم خوب زنها در خانه نشین بودن زیاد تو جامعه نبودن از که بستن در دوره اسلامی به هر حال رفت بیشه حجاجو رو به حجاج رو گفتش که آقا این بخواد چنین کاری بکنه حجاج با من دستور زدم کن به, تو... به توی سلهی بده یعنی سخنان گاهی کنایه است معنی کنایی داره گاهی مجازه گاهی استعاریه چرا می آین رو مجاز استعارم صحبت انشاءالله خواهیم کرد پس اولا من اینو نساختم پادشاهی در بین نبوده موضوع حجاجه و این سخنی که گفته و بعدم این رو کی آورده ابن جوزی همبلی که اصلا به حدیث هم خیلی بیش از همه عنایت دارن هنابل مسند احمدو ببینید چه کرده حالا عبارت می میخونم میگه کل عجب من رابن لم یفهم واید در شگفتی هستم از رابی که نمیفهمه روایتی که خودش نقود میکنه سا حددیثسه صحیح انل ما یز به بین جنت و آیا در حدیث صحیح نیومده که بین دوزخ و بهشت موت یعنی مرگ رو سر میبرند این معنی داره مرگ چیزی سر باید فهمیم که مرادی هست جدی که مرگ نیست نه برای دوزخیان مرگ ابدی هست، نه برای بهشتی ها خالدین ابدا. بعد میگه؟ اگر من اقوام ید العلم علم تشب دارم از اقوام که ادعای علم میکنن و یمیدونه الید تشبیه ولی همایل به تشبیه پیدا کردن به حمله مول احادیث علا زباهرها اون احادیث رو از ظاهرش حمل میکنن اگر اینها ها همطور که حدیث آمده رهاش میکردن اقلن به خالت در بندش میکردن ساده میموندم ولی اینا حمل میکنن به ظاهر ولا این ولیکن اقواماً قصرت اروم هم اقوام هستن که علومشون بودا آمده فرعتن حمل کلام علا غیر ظاهرهی نوع تعتیل فکر میکنن که این کلام بر ظاهر هم نکنن اصلا بگن مجاز استعاره است اینو یعنی تعتیل کلام شده بعد از کم مسد زده قول حجاج له کاتب هی وقدر مدحته ح خسا شاعر عرب حجات مف کرده بود فقالت از ضااحبت الحجاج و ارزن تتبع تطببع اقتصادا فشفاها ف شفا میگه که اون زنه گفت وقتی که از کم وارد سرزمین مریزی میشه و تعقیب میکنه اون را تا شبهاش میده بخره. حالا ما اتمام مثل قصیده قصیده مفصل بوده الی آخر گذشت یعنی الی آخر القصیده و الی کاتب هی اقتل لسانه ها به کاتب خودش کو زمانش ببرد پجا از الی به المقفل این کاتب آل بیخبر خبر رفت چاغوری رو برداشت آورد و خواست از کنم که زبانشو قطع کنه فقال له وای لک انما قوله الذل هل عطا زنه بشت گفت وای بر تو اون گفته اتها کامل کن ببون سمزه بدل الحجات سپس زنه دخت طرف حجات فقالت کاتب الله یقتع و مقبلی مقبل یعنی همون آلت قول یعنی زبان نزدیک بود که این زبان منو رو ببره حجاج زد که بگو من گفتم سده بده جناب عبالپرج ابن جوزی بغدادی خواسته با این بیان بگه که خیلی از کلمات هست اگر به ظاهر یا اصلا سکوت کنید هیچ چی نگید دربارش یا میخواید اظهار معنا بکنید نمیتونی به ظاهر حمل بکنید این کنایه است استاره است از کلم مجاز در زبان اینه پس این فرمایش ایشان که به من اعتراض کردند و گفتن که یه مسئله واسه پادشاهی اینا بردی من اینا نگفتم یک عالمی هست که چوبستا خود شما از کنم که دیگران همه قبولش دارن و ابن جوزی و خیلی مشهور و کتاب ها نمیشته و همبلی مذهب اصلا به حدیث از نظر من بیش از فرق دیگه توجه داره بعد نکته دیگر این است که مرغون فرمودن مانند این است که بگوییم صحابه اطراف پیامبر که بیست و سه سال با هم زندگی میکردن بیان پیامبر را طور دیگهای میفهمیدن و مراد و رو در آیاتی که برایشان میخوند درک نمیکردن این درست نیست خدمت ایشون عرض میکنم که از رسول خدا نقل شده و حرف معقولی هستند قرائن عقلی داره. ما حادیثی که خبر واجده ولی محفوف به قرائن عقلیه است اونها رو قبول داریم حضرت رسول اکرام فرمودن که در یه حدیثی حالا با تعبیرات مثلا مختصری کم و زیاد اگر من ارز گفتم حدیث رو که فرمودن که رب حامل فقه الى من لای سب فقیه. چه بسایه کسی یه مطلب فهمیدنی رو میبره پلوی شخصی از دستور خدا شنیده میبره پلوی شخصی ولی خودش بقیه نمیتونه بفهمه اون شخص میتونه و رب به حامل فقه ایلا من ها و افقه ها من چه بسا حامل فقهی که خودش هم میفهمه ولی میبینه اینو دستی کسی که افقه از او فهمش بیشتره نزاد در آثار آمده در کتاب های تفصیل وقتی که سوره ازاجا نصر الله و الفرح آمد اصحاب پیغمبر همین فهمیدن که زمانی که نصرت خدا بیاد و پت وقت پیغمبر و سغفرها نو کاند و بابا وقتی که دید مردم پود در داخل دین خدا میشن استغفار کن و گذاری کنه، و حمد کن و, کن و خدا علی و ابو و بعضی از صحابه گریه کردن گفتن این آیه نشون میده که این سوره نشون میده کار پیانبر تمامه بعد از فتر دیگه کار پیانبر تمام تقریبا میره از دنیا و وقتی از رسول خدا گفتن تصدیق فرمود بنابراین رب و حامل فقه هند الا من و افقه هوا من خیال نکنید که هر کسی از رسول خدا روایتی شنین به دیگران گفت اونا دقایقه سخن رو میفهمن نه از کنم که شب... شاید اونا نفهمن شاید اینی که شنیده درست نفهمیده شاهری برسون بیارن باز از سعیه بخاری از رسول خدا پرسیدن که در بین همسران بزرگبار شما مات مؤمنین کنون یکی زودتر به شما ملحق میشن فوت میشن فرمود اطفاله هن هن نیلا کسی دستش از همه دراستری در نبواید داره که زنان رسول خدا عرب من هم بودن همه دستشون رو با هم اندازه گیری میکردن ببینن دستی که دراستری بعد وقتی که فوت شد زینب بنت جاح که دختر عمه پیامبرم بود قبلا هم زن زید بود بعد طلاقش داد بعد رسول خدا گرفت اون از همه فوت شد مصباح شد منظور منظوری که این بخشنده تر از همه بود یک سر صدقه میداد لا امن صدقه میداد. به هر حال مفصولی که ببین حتی زنای پیامبر درست اول متوجه اون دقایق به نکات نشدن اینطوری نیست که بعدم شما میفرمایید که ملاک این است که اون چیزی که مورد اجماع همه اصحاب پیغمبره بله قبول داریم ما اما شما اجماعشون از کجا به دستا بردید بحث ما شما بر سر آیات سپاته از تمام اصحاب پیغمبر کتاب های باقیه که یکی یک آیات سپاس رو تفسیر کردن تعبیر کردن یا گفتن به همین صورت نیاشون دارین شما به تفسیر تبری که به قول ابن تیمیه گفته که این تفسیر از اجل تفسیر از اعظم تفسیر قدرند در همون کتاب مقدمه در علم تفسیر که مقدمه نوشته چاپ شده در همون تفسیر تبری شما نگاه کنین در مسائل مختلف که مربوط به ذات اهد. اقدس اهدیت صحابه با هم اختلاف دارن نظرهای گوناگون پیدا کردن اجماع چند جور ما اجماع محصل داریم اجماع منقول داریم به قول علما منقوله لا یقبل و محسله لا یحسل محصلشون که حاصل نشده تک تک تمام 120 هزار صحابه یا بیشتر یا کمتر رو ما یکی یکی بریم تحقیق کنیم اینا عقیشتون چی بوده کجا چنین چیزی زب شده تا بگیم اینا اجماع کردن منقولشون هم که کسی نقل کرده که اجماع شده این در حکم خبر واحد ضعیفه مگه او رفته یکی تمام صحابه رو بررسی کرده اقایشون بپرسه ما ناچاریم به کتاب و سنت و دلالت اونها مراجعه بکنیم ادعای اینکه که صحابه در هر چیزی فوراً ارز کنم که اجماع کردن امر سهل آسانی نیست مثال برای شما ارز کنم مثال است که در اون آیه شریفه که مشهوره در بین ارز کنم که مفسران و اینها یا یومعد ناوره الاربه ها ناوره شهرهایی ارز کنم در روز است روشنه و شاداب و به سوی پروهدگارشون سوی خداوندگارشون نظر کننده است در همین باره همین تفسیر تبری که ابن تیمیه گفته احسن تفاصیل قدرا از همه تفسیرها قدر منظفت بالاتره و بهتره گفته اختلف اهل تأویل پی تأویل زالک اهل تأویل که همون صحابه تابهین شون از اونا نقل میکنه این تعبیل تحویل اونا رو میشنسته اینا اختلاف کردن در این آیه فقال بعض هم معنی آزاده که انها تنب رو الارب ها بعضشون گفتن این گجوه به خلابندگارش نگاه میکنه همین ظاهر آیه و قال آخرون دیگران گفتن انها تنتظر رو ثباب من ربها بها یک دیگه, دیگه این گفتن اینا نظر به خلاد دوختن که خدا چی کار دربارشون یعنی منتظر سواب رحمت خدا هستن چون قرار بهشت بنن اهل بهشت هستن شهره هاشون روشنه منتظر دوزها و سواب پروردگارن و این بندگان خدا حتی دلیل هم آوردن و هم از قرآن کریم دلیل آوردن هم از اشعار عرب دلیل آوردن برای ارز کنم که این استعمالشون مثلا از قرآن انی مرسلته الیهم به هديه فناورتن بما المرسلون می‌فرماشد که بلقیس گفتش که ما یه هدیه‌ای می‌فرستیم برای سلیمان و نظر میکنیم که این فرستادگان ما با چه پیامی برمیگردند یک سر نگاه میکردن اون پرستادگان رو یعنی منتظریم که ببینیم اونا با چه پیامی برمیگردند پس نظره به معنی انتظار آمده حتی از حسان ابن ثابت که شاعر زمان پیانبره نقل شده وجوه یوم بدر ناغراتن هل الرحمان تنتظر الخلاصا شهرهایی در اون روز ناظرن نگاه میکنند به سوی خدای رحمان و منتظر خلاص هستند که این جنگ زودتر شمان بشه و کلک کپار کنده بشه شکست بخونن از بینیم اینجا با اله هم حتی مت شده ناوراتون الر اما به معنی منتظرات نه که در دنیا خدا رو میدیدن کسی هم که میگم میگه در آخرت میبین در دنیا کللا ترکورد ابسار و هووق یاد کل ابسار و هولت پل خبی ابزارار خدا رو درک نمیکنن خداست که محیط بر اینهااف. بازشان فرمودن که چیزی که استاد توطب استاضرات دارد نظر اهدستانت است در واقع چنین نیست یعنی روش اهل سنت این نیست که تکباجه ها رو ترجمه کرده و به هم بچسمانن تا ببینن سخن در ظاهر کلام چه می شود جانا ها سخن از زبان ما می گویی اطباقا منم هم نظرم همینه من میگم که باید ببینیم روح کلام در موقع ترکیب پیام کلام در موقع ترکیب چیه؟ به قبل و بعدش توجه بکنیم با آیاتی دیگه که اقل ما برای درک آیات بعد به کار بره افلای اختراف برون در یعنی چرا عقدتون رو به کار نمیدازید در قرآن ولو کانم انده غیر الله لبده دو فی اخترافن کسی را یعنی اگه عقدتون رو به کار بندازید تدبر بکنید میفهمید در قرآن اختراف نیست اگه از نظر غیر خدا بود در رزه 23 سال اخترافات توش پیدا میشد سخن من هم همینه بعد میپرمد که آقای تبا تواتب اصرار دارند که در پاره ای از موارد هی موضوع مجاز رو مطرح بکنن در حالی که در صدر اسلام مجاز نبوده این در قرن دومین ها این مباحث پیدا شده چون ارز میکنم که اگر کلمه مجاز رو از نظر لغبی دارن میگن لفظ مجاز مستر دومه باب جوزه است و اصلا، در جاهلیت در قبل از اسلام یک ای رو در منا اسمش رو ظلمجاز گذاشته بودن مراجعه فرمایید به جلد پنجم لسان العرب ابن منظور اونجا میگه ظلمجاز اون به منا کانت بهی سوقون پل جاهلیت یه موزعی جایگاهی در منا که یه بازرکی هم بود در جاهلیت خریدم میکردن اسمش ظلمجاز بود حتی شعری یم زکده مذکرو حلف هذ المجاز و ما مفی مپی هلکول و بکفلاو میگه به یاد تو که در اون زل مجاز خون خوردید باشید تعهدید کردین تا آخر شعر قد مپی هلکول و بکلا یعنی در اونجا پیرمرزان و سرپرستان اونا جلو افکنده شده‌اند به آخر کلمه مجاز در صدر اسلام اصلا اسم جایی بودیم. اما اگه از نظر معنا شما داری میگی بس لفظی با شما نداریم معنای مجازی در قرآن هست یعنی معنای که منطبق با ظاهر کلمه و معمول و متدابل کلمه نیست بایده شما باید معتقد باشین و بفرم ببینیم اللہ نور و سماوات عرض، یعنی چه؟ نور که در لغت مشخصه این نور حسیست خدا که در آسمان زمین ما می نیم روزای روشن از کم که تا بیده و می این که از خورشید سر میزنه، و خدای تعالی گفته من خالق نور ظلمت هم جعلب برومات پن نور سم ملدین و رو برم به هم یعنی نون و بعد خودش گفته من مثل مخلوقات هم نیستم لی سکم مثل ای شعی خب حالا الله نور یعنی چی مجموعی بگی که ما به ظاهر این کلمه نباید توجه داشته باشیم بعد یه معنی دیگری معنی مثلا به معنی هادی است که نور راه نمایی میکنه انسان تو چاله نیفته راه را نشونده خدا در زمین آسمان هدایت کرده و از این قبیل معنی همه میشه مجاز شما در لفظش ما دعوی داری؟ خیلی ما پس گرفتیم لفظشو ولی بالاخره نباید معنی ظاهری بکنیم باید یه معنی بکنی. جه های دیگه هم که ما معنی دیگه ای می میکنیم به دلیل همین قرآن همین استکاکات با آیات دیگه است که اگر حمله به ظاهر بکنیم استکاک با آیاتی دیگه بیدیم. در حدیث و سنت و تاریخ هم هست شما ما فرمایید فرمید در جنگ بعد اول جنگ تن به تن بود حضرت علی آمد و حضرت حمزه آمد و دیگران از کفار آمده آمدن نو خشبخصانه شکست خوردن بعد سپاه به جان هم ریخنم دو دست سپاه التغتا فریقین التغتا پرمه رسول خدا که داشتن نگاه میکردن فرمودن الان همین الوطیس وطیس با تین و سین به معنی تنوره الان تنور گرم شد آقا اونجا تنوری بوده ما به ظاهر کلمه حق نداریم. ارز کنم که این کلمه رو مجاز بدونیم یعنی الان جنگ تنور جنگ آتش جنگ روشن شد نه تنور الان همی الوطیس مراجعه فرمایید به تبری به دیگر بزرگان که تاریخ اسلام نمیشنن کسی در این قضایه اختلاف نداره بعد قرآن کریم مثلا می که وصل القرآن چلتی از اون قریه‌ای که ما در نجا بودیم برو بپرس، پسران حضرت یعقوب به پدر بزرگوارشون علی السلام گفتم. حالا ایشون را بیفته از در دیوار قریه بپرسه، در دیوار قریه جواب میدن. یعنی وصل اهل القریه. ما آه اسمشون مجاز میذاریم چون گذر کرده از ظاهر به یه معنی دیگه ای آمده. شما اسم قبول ندارین نگذار. ولی معنی که ما میگیم باز قبول بکنیم به می‌دونی، یعنی اهل القاریا. باز در قرآن کریم، از کنم که هست که فلیت آن نادیه سند و زبانیه. در همون شریف شریف اجراء، شریف علق بر نادی خودش رو بخوانه، بکمه، یعنی مجلس. همه مفسرین گفتن، یعنی فلیت و اهل نادیا. اهل نادیه اهل مجلس خود رو بخونید نه خود مجلسو اینا میگن گذر کردیم از ظاهر به معنی دیگیری که نزدیک به ظاهره از کم که باید بکنیم به سبب قرائنی که درش هست خود شما نتوانستی از این قضیه بگذری قبول کردی که در قرآن گاهی مثلا ید به معنی مجازی به کار رفتی حالا لفظ مجاز قبول نداری قبول نداشته باشید ولی معنیشو در مورد فرض کنید که زن و شوهری که از هم میخوان جدا بشن قرآن کریم گفته که اگر ازدواج نکردن با هم نست مهر رو مرد باید به پردازه. درسته؟ بعد گفته که کرامت رو پراموش نکنید می‌توانید تمام مهر رو بدی یا اون زن میتوانه صرف نظر بکنه اونجا یه کلمه‌ای است او یعفو الذی به يد هی یا درگذرد اون کسی که گره ازدواج به دست اوست ازدواج گره داره تو دست شوهر یا تو دست ولی زن مثلاً به تپاسیل مختلف میگه از صحاب و بزرگان نقل شده یه نکاه به دست اون شخصه یعنی چی؟ یعنی در اختیار نه که تو دستشه اینا به ید آمده با همین لفت هم خواهی تعالی میفرمد به ملک ملک به دست خداست ملک یعنی سرطنت سرطنت چیزیست که جاش تو دسته یعنی به امر خداست به فرمان خداست به حکم خداست همطور که میگه از کنم که به یاد کسی اغده یعنی گره نکاح به دست روست به ید روست پس شما اینو قبول کردی تو حرفت این است که میگی همه جا نباید مجاز رو به کار برد باید یه قرینه ای داشته باشه توا توایی کردنه همه جا این رو به کار برن نه عزیز من بندن که همه جا به کار میبرم؟ اونجا که میگه دست و صورتتون رو به دربوزه اونجا رو به کار میبرم؟ یعنی اختیارات رو به تمیز کنید مثلا قدرتتون رو تمیز کنید کجا من همچه عربی زدم؟ منم جایی که قریه هست میگویم از جمعه همون آیه که مورد نظر من و شماست حالا میریم سرش و بریم قریه دیگه. همون آیه که خدای تعالی به شیطان میگه ما مناک ان و لما ما خلق چه چیزی رو من کرد که در برابر اون کسی که با دو دستم او رو خلق کردم ارز کنم که سگله میکنیم. آیا این عبارت خلق تو به یدایی؟ تعلیل نیست علت نمیخواد بگید. بگه این شخص که من این کارو کردم بازم سجده با سگنه ننش پس این تعلیله داری علت رو بیان میکنه یعنی علت اینکه که باید سجده بکنی این است که هو به یده با دو دست خودم او را آفریده خب حالا بیم سریم آیا خدای تعالی فقط آدم رو با دو دستش آفرید و منظورش چیه خدا هر فیزی رو خدا آفریده شیطان میتونست بگه که خداوند شما در سورهای دیگه گفتی که همه رو حتی حیواناتو با دستان خودم آفریدم مثلا در سوره شریفه از کم یاسین اون آیه کریمه که میگه که از نعمتهای خداست که حتی حالا حیواناتی چارپایانی برای شما آفرید اونجا کلمه عیدینا دینا آمده او یا یرو خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون آیا اینا توجه نکردن که ما برای اونها به دستان خودمون چارپایانی براشون آفریدیم ارز کنم که انعام و اینها مالک اون شدند اظهار نعمت داره میکنه خب پس خدا حتی حیوانات هم با دستای خودش آفریده پس این چه است شیطان میتونست به خودتو حیوانم با دست خودت آفریدی با دستان خودت آفریدی آفری حالا میگه این آدمی که با دستان خودم آفریدم این که علت نمیشه این که کمال برای آدم نیست پس نباید اونجا به معنی دو دست معنی کنی یعنی آدمی که با کمال اناویت خود او را آفریدم روح ہے ادائی درشتہ نه فقط فیہ من روحی بدون پدر و مادر او را آفریدم بی واسطه او را آفریدند کرامت بر او کردند به این علت تو باید دو سجده بکنی او رو وللا یه چیزی که درباره حیوانات هم خدا عمل کرده بود خدا می‌خواست بگه شیطان حقلش اعتراض بکنه میگه دلیل نشد که حالا ببینیم تفاصیل اهل سنت به امیدوارم دیگه ابن سعود رو مفسر بزرگ رو از اهل سنت بدونی. اونم دیگه نه معتذلی مذهبه و نه اینها در تفسیرش این همین مطلب رو ایشانم آورده تصریح کرده ابن سعود در تفسیرش میگه ای خلقتهو به بذات من غیر ابن و امن من رو بدون پدر بدون مادر خلق کردم بعد خودم مستقیم خلق کردم بیواسته خلق کردم مستقیم کرامت هایی که کرده در این کلمه و بعد گفته که به یدعی یک پروردگار فرموده میخواد کمال عنایت خودش رو مبالغه در عنایت خودشه من برای شما این مثالی میزنم پس کن شما رئیس اداره هستی یه شخصی رو نصب کردید به یه مقامی بعد یه کسی با اون مخالفت میکنه از زیر دستان شما شما بهش میگی آقا من به دست خودم او رو اونجا گذاشتم. شما حق داشتی با اون مخالفت بکنی من خودم به دست خودم اون رو نصف کردم در اون مقام حالا آره یعنی شما با دست خودت پس کرده آقا رو گرفتی بردی اونجا گذاشتی اونجا یعنی به امر منه به فرمان منه باید مجاز فهمید اگر بخوایم مجاز اونو نگیریم حالا معنی مجاز شما ما راجع به لفظ مجاز تعصب زیاد دارید آیه معنی نمیشه اعتراض شیطان معاذ الله نستاد به خدا روا میشه میتونه اعتراض کنه این چه دلیل اسمیاری؟ میگید به دست خودم آفردم حیوانم تو گفتی به دست خودت آفریدی حالا ملائکه یا منی که سالها عبادت کردم هنوز قبل از این که پردش از اون مقام از حیوانات هم که باید سلیلو کنم اینجا اراض دیگه ای که ایشون گرفتن بر من گفتن که ایشون یه منهاج معینی نداره گاهی به این حدیث مراجعه میکنه گاهی به اون حدیث مراجعه میکنه میگه هر چیزی که مخالف با قرآن نباشه موافق با قرآن باشه موافق با عقل باشه اینا صحیحه اتفاقا درست متوجه شدید یکی از شرایط صحت حدیث اینی که با قرآن مخالف نباشه لاعقل با عقل مخالف نباشه مثل همین بیانی که الان کردیم که چیز خلاف عقلی میشه که اگه بخوایم اون رو به معنی دستان بگیریم اعتراض شیطان وارد میشه اما این که تنها این دوتا ملاک باشه نه اولا ما منکر حدیث نیستیم منکر سنت نیستیم در قرآن کریم مثلا فرموده که خوک حرامه خرزنش خنزیر لحمه خنزیر حرامه اما سگه نگفته گربر نگفته شغال رو نگفته سکوته چیزی که سکوته رسول خدا پرموده علا احیاننا و اوسنا رو چشم و سر ماست رسول خدا پرموده که الله هرمه علیکم من از خداوند حرام کرده بر شما از حیوان درنده اون حیواناتی که انیاب دارن کل زیناب یعنی دوتا نیش دارن و پاره میکنن حیوانات رو درندن چه بسید خوی درندی اونها به انسان منتقل بشه و مند تویور کل زیم اخرب و از پرندگان اونها که چنگ دارن مثل اقاب و باز و کرکست رو داشت اینا رو حرام کرده خب این نه مخالفه با قرآن قرآن سکوت کرده در این باره رسول خدا فرموده اثبات هم شده هم درسته قبول داریم. اما این که میگید تبا کتابی رو نشون نمیده مگه یک کتاب برای حدیث هست ساها سته هست مصند احمد هست ما بیشتر از شما به کتاب مراجع میکنیم برای درک به اصطلاح قوانین دین مثلا شما به مسند امام زید مراجعه نمکنی با که امام زید و همه رجالیون بزرگ اهل سنت مثل ابن حجر و دیگران همه تایید کردند همه را از ثقات بزرگ دانستند و او این مسند دیره از پدرش حضرت صدق و اون از حضرت حسین و اون از حضرت علی و او از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده شما هیچ به اون مراجعه نمیکنی بعد به اون هم مراجعه کرد در کنار مراجعه به صحی بخاری، صحی مسلم، سنن عبود عبود، سنن ابن ماجه قزمینی، مسند احمد و از اینها کتاب های مد. ما به همه مراجعه میکنیم یک کتاب معینی رو ما نمیگیم برید تقلید این کتاب بکنی فبشتر عباد لزین و یستماون الگول فایتبون و احسانه مگه شما تقلید و قبول دارید شما که میگید ما تابه هیچ مذهبی نیستیم شما که میگید که خود احمد البلحمل گفته لا تغلد نی ولا تغلد اشتافعی ولا تغلد مالک و خضوم ما اخذنا بگیرید از اون چه که ما گرفتیم به کتاب و سنت مراجعه کنیم شما که شعارتون اینه منم هم همین رو هم میگم منم هم میگم همه کتاب ها رو بعد مطالعه کرد از خانم که با قرآن سنجید، با عرف سنجید، سند شدید، شد مرفوع است، مرسله است، مصنده، غیر مصنده بعد وارد در این قضایه شدم و ارز کنم که برای مطور شما ندیده و نشناخته یه دو تا ساخندرانی از من شنیدید یه همچین نسبت هایی به من میدید این درست نیست؟ این نسبت ها رو به اشخاص دادن تا اشخاص خوب نشناس انسان حق نداره که نقدشون بکنید و بعد این که من گفتم که زمخشری از اهل سنته شما مجید تسبیدید به این که این اون معتزلیه از اهل سنت نیست اولا من خیلی متاثرم از اینکه که بینم امت اسلام اینطور همدیاره ترل می کنن بر این که یه وقتی اشعری ها می گفتن که معتزلی ها معتزلی ها. ما اهل سنتیم تمام که امام فخر رازی که اشعریه تو تفسیرش تفسیر کبیر یا مفاتیح غیب اونجا همش میگه قول اهل سنت اهل سنت جماعت اینطوری میگن قول المعتزلی اینطوری میگه بعد یه مدتی گذشت شما سلفیا پیدا شدین گفتین فخر رازی هم اهل سنت نیست اونم اشعریه اهل سنت فقط ماها هستیم نه معتزلی در حالی که ما در محیط خودمون تقسیم بندی رو اینطوری طور نمی کنیم میگیم علماء اسلام با هم اختلاف دارن هیچ کدوم از اسلامیت خارج نشدن من تا سنی رو در برابر شیعه قرار میدیم میگه من های که معتقدم دوازدهتن از سوی خدا تعیین شدن برای خلافت بعد از دسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم و, و که همه معصوم هستن و ملهم هستند. محدث هستن الهام بهشون میشه اینا ایمه دوازدکانه هستن پس اون خلاف های سگانه یعنی عبو بکر امر و, و عثمان همه قاسب خلافت بودن دوزخی هستن ایمه کفرن ایمه زلالن اینا رو بهشون میگن شیعه در برابر اینها کسانی که میگوید که نه خلافت به شورا بوده علی علی السلام هم بعد از مدتی خودش توافق کرد و بیعت کرد با ابو بک و اینا هم هیت کدوم مثلال و کفر و اینا نیستن اونا رو بشویم اهل سنت با این تقسیم بندی من حرف می زدم وقتی که میگم از اهل سنت زمخشری که شیعه دوازده امامی نیست که پس من وقتی میگم زمخش اهل سنته با این ملاک حرف میزنم حال شما آمدی میگه زمخشری خارج کن از اهل سنت بستیارو فخرازی رو خارج کن قضالی رو خارج کن همینطور هی علماء بزرگ و بردستان یواش یواش و چون اسلام حقیقی رو اسلام حقیقی رو اسلام سلفی میدونی بنابراین اینا غیر مسلمان هستند در واقع ظاهران میگن ما مسلمان هستیم اینطور علماء این امت تو که ما افتخارن همین زمخشتری حالا یه قردشو قبول نداری دو قردشو قبول نداری که بیاناتی داره چه گفته چقدر ازش استفادها کردن ما افتخار مسلمان هاست که یه همچین شخص عجمی که اهل زمخشر بوده از طوریست از که علمایی که عرب زبانن در برابر او خواهدن از حیث دانستن ادبیات عرب و نکات قرآنو، اینا رو اینطور تحقیق کردند. درست نیست انسان باید استخفار کنه برادر عزیز و گرامی من پس معلوم شد که ما هم منحاج داریم همون کتاب و سنته منطور سنت شما محدود کردید به کتاب هایی و برای تشخیص روایات هم فقط به علم رجال مراجع میکنید یعنی علم زنی آقا شما در زمان خودش اشخاص راست نمیشنسی چون از آدم خوبی میدونستی بعد مده بعد بد شد یا بالعکس حالا به اعتبار گفتن ابن حجر یک کسی که هزار سال پیش بودیم میگه آدم خوبی یا بده نمیشه اطمینان پیدا نمی ابن حجر مگه معصوم بوده ابن محین مگه معصوم بوده احمد ابن همبل مگه معصوم بودن اگر یک کسی رو تفسیح کردن یا کسی رو تعدیل کردن امور زنیه شما اون امور زنی رو به جان این روایات مندازین ما میگم آقا در مطل بیشتر دقت کن ببین موافقه با قرآن کلیمه با عقل با دیگر روایات سنت که وصول اونها مورد اشکال نیست مورد تردید نیست ببین آیا طرق دیگهی هم برای صحت انتصاب این روایت به پیغمبر هست روایات دیگهی هم هست به این مزمول که آمد. از راه های دیگر هم باید بیشتر رفت شما من دیگه بسیاری از علمای اهل سنت حدیث میارن فوری اشکال در سندش میکنن اون رو تضعیف میکنه حدیثی بیزنه کرد نمونش مرحوم ناصر الدین البانی خدا رحمتش کنیم کتاب جناب محمد غزادی مصری رحمت الله علیه رحمتان با سر رو که در سیره پیامبر نوشته فقه سیره آمده در زیدش مطالب قشنگی که تو سیره آمده مافق قرآن مافق عقل گوهه گفته این روایت حالا شخص راویش بوده در بین سلسله روایتش یه آدمی هست اون ضعیفه پس این باید رو بذاریم کنار در حالی که باید نوا کرد اون حادثه‌ای که این شخص نقل کرده تواریخ دیگم اینو آوردن روایات دیگم هست در اون جمع این عمل که این حکایت میکنه تناسب داشته مناسب بوده از که هم شرایطی دیگر رو دردازه قضادی آمده یه کتابی در فکر نمیشه که بوی عطر ازش بیرون میاد ایشون آمده هی hey, با جرح و تعدیلات ربات یعنی با یه امور زنی این کتاب خراب کرده پس فرق ما مسلمانان آزاداندیش اندیش تا به کتاب و سنت با شما سلفی های برادر برادران گرامی ما اینه که شما ملاکاتون همین ملاک مهمتون نه تنها ملاک علم رجال به جون این روایات نببی افتادین اینو رو میشکردین اون از بین میبرین اونو رو توسیق میکنین این تضعیف میکنین یه نکتهی من فراموش کردم بگم که شما پرمودید که این روایتی که میگه خدای تعالی در عرب از آسمان میاد یاد تو زمین یاد در آ... به آسمان اول میاد از عرش میاد به آسمان اول و میگه که کیس مرا بخواند که اجابتش کنم که من اشکال کردم گفتم وقتی که حق تعالی از اون بالا بیاد پایین از کم اونجا خالی میمانه شما گفتی نه آمدن پایین خداوند اینطوری نیست برای اینکه خدا محدود نیست خدا وقتی که از اون بالا میاد پایین اونجا در این حال هست یعنی چی؟ یعنی معاذ الله خود کش میاد هم اون بالا هست هم کش میاد میاد پایین این که تصوره از که آدم سه نه تصوره حق تعالی سبحانه و تعالی وانگه از شما میپرسم این پایین بود یا نبود حالا بالا رو کاری ندارم این پایین قبلا بود یا نبود این میگه آمد پایین پس نبوده قبلا پس خدا رو محدود کردی. و خدا رو در جهان میدانی و جهان احاطه به خدا داره نه اینکه خدا احاته بر جهان داشته باشه خدا داخل در جهان آمده آمده پایین فضا او رو احاته کرده تونی پایین نبوده آیا همین حلولی که شما ازش میگریزی اینجا زامنگیری شما نمیشه پس برادر جان عزیزم استغفار بکن توجه بیشتر بکن موضوع است اولدین معرفت الجبار اگه این خراب بشه بقیهش همه زایه بله سخن رو پایان ببرم یک سپارشی دارم به برادر بزرگبارم آخرالکلام منه که سعی بکنیم که ما مسلمان ها رو به اکتیگر نزدیک بکنیم از معتذره از اشاعره استفاده ها فراوان کرد در کلام سخنان بسیار خوبی گفتن در برابر کفار مسیحی ها و یهودی ها ایستازن از محکمی آوردن استفاده ازشون بکنیم همه رو خودی و غیر خودی نکنیم علمای اسلام بودن در بعضی قسمت ها با هم توافق دارن در بعضی قسمت ها اختلاف با هم دارن